ای پیک راستان خبر یار ما بگو احوال گل به بلبل دستان سرا بگو ما مهرمان خلوت اونسی قم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو بر همچو می زدان سر زلفین مشک بار با ما سر چه داشت زبهر خدا بگو هر کس که گفت خاک در دوست توतियाست گو این سخن معاینه در چشم ما بگو آن کس که من عماز خرابات میکند گو در حضور پیر من این ماجرا بگو گر دیگری بر آن در دولت گذر بود بعد از ادای خدمت و ارزه دعا بگو هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر شاهانه ماجرای گناه گدا بگو بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان با این گدا حکایت آن پاچا بگو جان hazards دام زلف چو بر خاک میفشاند بر آن قریب ما چه گذشته سبا بگو جان پرور است قصه ارباب معرفت رمزی برو بپرس، حدیثی بیا بگو، حافظ گرت به مجلس او راه میدهند، مینوش و ترک زرق زبهر خدا بگو.